کسی هست حرف و عمل کرده دیگران و واکنش دیگران خیلی براش مهمه چرا احلی پیشنهاد میفهمه چه تمرینی باید, باید بکنه باید از گناه دوری کرد ایمان ضعیفه اینجور حساس انسان ولی اگه به خودش مشغول باش آدم دیگه به دیگران خیلی ترفی نمی بنده و کاری نداره